بخش دوم دفعه اول خانه حسن این دیدمش از فامیل های دور بابای حسن بود از اینها که سالی یک بار توی ختمی، جشنی، چیزی سر و کلهشان پیدا می شود و از دور با آدم سلام علیک می کنند. بعد دوباره تا سال بعد گم و گور می شوند یک پسر لاغر سبزه بود که سر همین موضوع بهش هادی بلک هم می گفتند پاهای پرانتزی ناراحت داشت و تحریش نمره هشت نه اینکه درست اندازه گرفته باشم یا از خودش پرسیده باشم ولی در اصل تحریش آنقدری همان نمره هشت می شود از این شلوارهای جین پوره هم تن کرده بود همانجا با حسن شرط بستم که شلوارش باید بعدن پاره شده باشد لاعقل از یک جاهایش بعدن پاره شده بود اما حسن محض خاطر خودش هم شده زیر بار نمیرفت. رفت می گفت نه بابا چی میگی پسر خرپوله محال ممکنه کمی باش بحث کردم تا بالاخره قانه شد. بعدا راجبش حرف بزنیم. به خدا اگر آن تنبان نکبتیش درست از روی زانو پاره نشده بود، من هم اصراری نداشتم. تازه همین یکی که نبود. جورابش هم کلی کثیف بود که آن را هم حسن میگفت گفت کفشش رنگ پس میدهد. <تص> اما اینها حرف یا مفت است. جوراب کسیف و شلوار پاره آبرو برای آدم باقی نمی گذاره. هر از آنجا خراب بود که با همین ریخت و روز قزمیتش ادعا می کرد که میتواند ظرف مدت زمان کوتاهی مایه دارم کند. نکرده بود حداکثر کتو شلواری چیزی برای خودش راست و ریست کند که حرفش را راحتتر به کرسی بنشاند. قبول دارم که تعداد آدمهای کتو شلواری ناجوری که تا حالا دیدم خیلی زیادتر از خوبهاشان است اما به هر حال هر کاری حساب خودش را دارد. اگر کسی خواست حداکثر می شود کراوات نزند. ولی با لباس های جرواجری نباید درباره پیشنهادهای مالی کلان صحبت کرد یک گوشه اتاق حسن نشستیم که ای کاش قلم پای نحسن می شکست و همچه خبتی از هر چی هرچی بدبختی بعد از آن کشیدم از همان نشستن بود همین الان که اینجا در خدمت شما هستم هم به این نشستن مربوط می شود اینها نگفتم که از این جوانک متنفر بشوید اما اگر بخوایی در آینده به من حق بدهید حتما خیلی به دردتان خواهد خورد هادی با اعتماد به نفس زیادی به من زور زده بود اینقدر زیاد که فکر کردم از چیزی می ترسد یا به چیزی شک دارد گاهی اعتماد به نفس زیادی به خاطر ترس است من خودم این را تجربه کردم از حسن پرسید حواسقایشون آره بهترین دوستم از بچه های نیک روزگار بله بهشون برام گفته بودی؟ حالا خودت از نزدیک بیشتر باشاش نمیشی بله بله اتمن اصلا ما واسه همین اینجاییم واسه رستم دوستی های پایدار خدایا من چقدر از این حرفای صد من یه غاز لجم در میاید. به خدر چند لحظه خودشیرینی زود گذر باید کالی دروغ و دبنگ هم کرد برای خالی نبودن عریضه گفتم ذکر خیر شما هم همیشه هست گوش فلکو کر کرده نکه الان چند وقت اوزه همینه جدی میگم. حسابی توی زوغش خورد در عرض نیم ثانیه لبخندش جمع شد فکر نکنید که اگر من نبودم قصداش حالا حالا مثل کفتار بخندد ولی حرفی که بهش زدم کارگر افتاده بود درستش این بود که بگوید خوبی از خودتونه ولی ترجیح داد فقط سر و ته را هم بیاورد. بعدش از من پرسید خب عباس جان میدونید برای چینجه هستین؟ برای دوستی های پایدار؟ همون اول کاری رو گوز افتاده بودم. عادی گفت نه از شوخی گذشته راجب این کار چیزی میدونی؟ حسن قبلا شکسته بسته چیزهایی بران گفته بود. بعدش هم کلی قسم آیه که در موردش لام کام با احدی حرفی نزنم. گفتم نه از کجا بس بدونم؟ خوبه میخوای راجبش بیشتر بدونی؟ هرچی حسن آقا بگه؟ این را گفتم که زیر دین تعریف و تمجیدهایی که حسن هم کرده بود گیر نکنم. بالاخره حادی زغ کرد. نکته خیلی مهمی وجود دارد و آن اینکه در هر گوشه دنیا وقتی بازاریابی دارد زوغ می میکند یعنی اینکه شما دارید کم کم توی چنگش اسیر میشوید. شاید ندانید ولی همه کارهای این جماعت روی حساب و کتاب است. برای همین هم هست که خیلی راحت میشود از کوره به درشان برد. کافی است به سوالهایشان جواب سر بالا بدهید. کارشان ساخته است بدون اینکه سال دیگری بپرسد یک خودکار طلایی و یک کاتالوگ رنگ رو رفته از کیف دستیش بیرون کشید خدا میداند چه چیزهای دیگری هنوز توی کیفش بود چون کیفش همانجور قلن بمانده بود من منان کاتالوگ را هیچ وقت یادم نمی رفت یک چیزی بود که نمی دانید. توش عکس همه ی آرزوهای تاریخ بشر را چاپ کرده بود از ماشین و ویلا و خانه و یکی دوتا تا زن هنرپیشه خوب بگیرید تا هر چیزی که آدم نداشت جوری کار شده بود که راحت آدم را خلل کند من که بیشتر حرص خوردم ولی هر کسی جای من بود بی برو برگرد اول آب از لب ها چش آویزان میشد حادی تونتون ورق میزد و پشت پشتم در موردش توضیح میداد چیزی دستگیرم نمیشد ولی جدا خوشم آمده بود تا به خودم آمدم دیدم دارم مثل بچه آدم به همه حرفاش گوش میکنم همینجور میگفت تا رسید به یک صفحه مخصوصی که باید فوری کاتالوگ را میبست. بی هیچ دلیلی یک مرتبه هر دویشان چهار پاقاشوگی نشستند. هادی لحنش را جدی از قبل کرد. گفت خوبه باس با پانسه هزار تومن چه میشود کرد؟ من حتی نمیدانستم که برای به دست آوردن پانسه هزار تومن چه میشود کرد؟ گفتم چه من دارم میپرسم. بپرس؟ منظورم اینه که اگر پونصد هزار توان داشته باشی چه کارایی میتونی باش بکنی شما رو به خدا سوال رو نگاه کنید. این چیزها به کسی چه من هم در آمدم که میرم هر چیز پونصد هزار توانی که لازم داشته باشم میخرم حسن با دندان لوچش را گزید ولی چیزی نگفت شاید بعد بعدها بفهمید که چرا با اینکه لوچش را گزید چیزی نگفت هادی گفت منظورم کسب و کاره میشه با این پول چیکار کرد میشه کارواری رو انداخت؟ بستگی به آدمش داره خب هر کسی یه جوریه مثلا خوده اگه این پول داشته باشی چیکارش کارش میکنی؟ ندارم که 500 هزار تومنه کم <تصفح> پولی نیست که دیگر داشت از دستم شکار میشد مثلا اگه داشتیش اگه داشتم اگه داشتم میزدمش به یه زخمی مثلا میشه بهاش ماشین از دمگست برداشت رفت مسافر کشی یا جیگرکی زیر ای زد یا اینکه یه موتور بخری پیک وایسی درست یادم نیست که چی اما حتم دارم که چند شغل آبرومندانهی پانست هزار تومانی دیگر هم براش قطار کردم حادی خیره خیره نگاه هم دو به شک شده بود که من یا خیلی خیلی خنگ تشریف دارم یا خیلی خیلی آبزیرکا نوام به حسن نبود ولی حالا روز او هم نباید بهتر از هادی بوده باشد. توی قوانین اینها نیست که جلسه را نیمه کاراول کنند و گرنه شک نکنید که هادی این کار را با کمال میل انجام میداد. به نظرم در این مورد خ قانونی بدی دارند. اگر من میخواستم قانونهاشان را بنویسم اجازه درگیری لفظی و بگو مگو را بهشان میدادم. هرچه باشد اینها هم انسانند و گاهی لازم است که با مشتری دست به یقه بشوند حادی خیلی دوستش من را شیر فهم کند که با پول خیلی بیشتر از این هم هیچ غلطی نمی کرد. اما زیر بار نرفتم که نرفتم. تا جایی که دیگر خودم از خودم خیلی بدم آمد درآمدم که اگر این پول را توی بانکی جایی بذاری شاید بنزی یخچالی، خونه ی چیزی برنده بشی. با کمتر از ایناشم خیلی چیزای خوبی بردن. جدی میگم. این را که گفتم مثل اناب شد چون سبز بود نمی سرخ بشود. همین بود که کابوت شد. برای اولین و آخرین بار همانجا بود که دلم برای هادی سوخت. میتوانستم باز هم نفهمم اما گذاشتم که حرفش را ادامه بدهد چون اگر نمیگذاشتم بعدش عذاب وجدان شدید میگرفتم. هادی هم دیگر حواسش را جمع کرد که خیلی پیازداغ حرفهایش را زیاد نکند. حالا یا از دستم آسی شده بود یا چی که برای سوالهای بعدی دیگر منتظر جواب من نمیماند. خودش تند جواب جوابها را میداد و رد میشد. فقط یک جایی که خیلی لفت و آبش داد آنجایی بود که یک کاغذ آچار برداشت و با آن خودکار قشنگش گذاشت به سیاه کردن صفحه یک شکر های آلبالوی می کشید که بیا و ببین اگر شما باشید دهتاش رو هم به زور نمیتید بکشید اما این پسره صفحه آچار را پر کرده بود از آلبالو خلاصه اینقدر روی مخم ملاجم کار کرد تا بالاخره حرفهایش ته کشید شاید اگر من آدم بهتری به نظرش میرسیدم. قدش نمی آمد یک کم دیگر هم حرف بزند اما به هر حال دیگر ادامه نداد بیشتر از یک ساعت چهار زانو نشسته بودم و اعصابم حسابی قرغاتی شده بود تو شیشو بشه این بودم که بزنم به چاک محبت یا نه که تازه نطق حسن باز شد یا خدا هنوز هادی لالمانی درست و درمان نگرفته این یکی شروع کرد هی hey گفت هی hey گفت با صد رحمت به هادی حسن که هیچ چیز مش کنی نمی گفت. همش راجب این بود که تحت هیچ عنوان نباید با هیچ دیار البشری در این مورد صحبت کنم و چه و چه لا مذهب عین مرغ عشق زر میزد اگر پابرهنه توی حرفش میپریدم به تته می افتاد. اما معتقدم اینکه خیال کنیم بازاریاب حق ندارد حرفایش را تا آخر بزند فکر درستی نیست. این یک جور مردم آزاری است و آدم بعدش احساس خوبی پیدا نمی‌کند. تلفن عادی زنگ خورد. دارم میام، دارم میام. دو دقیقه دیگه سر کوچه هم. بعد تلفن رو قطع کرد و به حسن گفت لاله بود اومده دنبالم من دیگه یواش هواش برم چون باید تا دو دقیقه دیگر سر کوچه می بود اجلتاً به ختم جلسه رضایت دو دو قضیه درجا و پیدا کرد اما هنوز دم در نرسیده دوباره ازم قول گرفتن که لام تا کام با هیچ پدری حرفی نزنم حتی شخص شخیص هادی این اطمینان رو بهم به داد که هر جو داشتم خودش با کمال میل من را راهنمایی کند. من از آن خوان ندارم که تا یک چیزی میفهمم زود بروم همه جا جار بزنم. البته آر وارم کمی لقه است ولی کلا آدم هوچی و چانشولی نیستم و اگر کسی درش خواست میتواند تا یک جایی روی من حساب کند. خیلی تک و توک پیش آمده که راز کسی را جوری فاش کنم که طرف از زندگی ساقط شود. تا سر کوچه را با هم رفتیم. گفتم اگه جایی میریم برسونمتون. نه ممنون میام دنبالم. وسیله هست. شانس آوردم که دست رد به زد چون از جانب من اصلا وسیلهی در کار نبود. هنوز زیاد معتر نشده بودیم که از سر پیچ بالایی یک پجای دویسه شیشه آلبالوی رنگ ظاهر شد و درست آن دست خیابان ترمز زد. نگفته معلوم بود که طرف همان لالهی است که قرار بود دنبالش بیاید. قبل از اینکه به سمت ماشین لاله برود به هم گفت خب عباس جان کاری باری؟ خوش داشتم ازش بپرسم از چی میترسد که مدام میگوید با کسی حرفی نزنم اما چه کاری بود آزار که نداشتم دوباره میخواست یک ساعت کلم رو بخورد عوضش گفتم لطف کردین اومدین شاید هم گفته باشم لطف کردین تشریف آوردین ولی حتم دارم که حرف دیگری نزدم بعد حادی صاف رفت روی صندلی جلو نشست و حسن هم از شیشه سمت راننده رفت سراغ لاله که نمیدانم چه غلط اضافه ای بکند لابد داشت سلام علیکم میکرد جوری هم ایستاده بود که دیدم را قشنگ کور کرده بود من که درست طرف را نمی‌دیدم ولی از ظاهر کار پیدا بود که از این دخترای امروزی است چون عینک دودی داشت و موهاش هم تا جایی که میشد ریخته بود بیرون مشکی برکلاقی بعد از چند لحظه دقت کردم که حسن کسافت برای خداحافظی باش دست داد و دوباره آمد این طرف خیابان اما جایی که من وایستاده بودم ناگهانی از ماشین پیاده شد و جیغ زد پیگیر اون قضیه باش حسنا از این طرف داد کشید ببینم چی کار میکنم بس اگه جوش شد یه ندا بده حتما با هم در تماسیم دیگه باشه به زنگ میزنم آره آره منتظرم پس تماس از من آره باشه میبینمت یا علی یا علی به غیر از یا علی میشد بقیه حرفهاشان رو قلم بگیرن چون جدا هیچ چیز مهمی توش نبود که به شنیدنش بیارزد. یک کار خندهداریم هم که آن روز کردم و تا همین حالا دارم برایش دنبال دلیل میگردم این بود که شماره ماشین دختره رو برداشتم. کار خیلی مسخره بیخودی بود. خودم دارم اعتراف میکنم. آنها که رفتن هستن دوباره ازم قول گرفت که با کسی حرفی نزنم. به جدم توی سند قاچاق هم اینجوری کارهاشان رو دو ق اگر زورشان می رسید بعدشان نمی توی همان اتاق قرانتینه هم کنند که خدایی ناکرده چیزی به بیرون درز نکنند. همین کارها رو میکنند که آدم به بالا و پایینشان مشکول می شود. گفتم این دختره کی بود اصلا؟ از همکار هاست. بال بود. خفه شو. جای خواهری پرسیدم. بعدش رفتم به اینقدر قسم آیم داده بودند که مجبور شدم بعد از ظهری با چند تا از کسانی که میشناخته شناختم راجع به این موضوع صحبت کنم یکی دو نفرشان که از بیخ عرب بودند از بچه محل فقط یکی جواد یک چیزهایی شنیده بود و یکی هم اکبر بیدندون اکبر کلی برام نکنار کرد که یکی از همینها داداشش را توی خط کشندند و حسابی تسم ترکش کردند درسته حسابی که روشنم نکرد بیشتر نقنق میکرد. راستش روی حرفاش هم که نمیشد خیلی حساب کرد اگر دوتا دندان جلوییش سر جاش بود اکبر چاخان بیشتر برازندش بود اما از این حرفا که بگذریم بجری به سرم زده بود که یک بار دیگر هم کش شده دختر رو.